از پیام بر نقل میکنند که اگر انسان بدون امید و آرزو بخواد زندگی کنه زندگیش نمیچرخه. حضرت فرمودن اگر مادری امید بزرگ شدن بچه‌اش رو نداشته باشه و امید به این نداشته باشه که این فرزند به بار میشینه اون زحمت حمل رو و زحمت شیر دادن رو و بزرگ کردن رو به خودش نمیده امید انسان رو انگیزه میده برای قبول سختی ها و تحمل سختی ها.